سوم چاخواان ترین چخانی هم که با عمرت دیدی خودم میدونم افتضاحه انقدر که میتونم عین آب خوردن وقتی میخوام برم مجله بخرم علیکی بگم دارم میرم اپرا افتضاحه خبعلیکی واقعی اسممثل گفتم میرم باشگاه ووسیللم بردارم عمرم ووسلا توی باشگاه نگه دارم توی خوابگاه جدید آسنبرگر مموریال وینگ پنسی که بالایی ها و سالپاینیا ها اونجا بودن اتاقی گرفتم من سالپاینی هم هم اتاقیم هم سالبالایی اسم خوابگاه و به یاد آسنبرگر نامی که یه وقتی پنسی می رفته گذاشتن بعد از فرق و تحصیلش کلی پول درورده آقای مدت تو کشور دوره افتاده بود قبر جاره می داد. به ازای نفری نفری 5 دلار میتونستید هر کدوم از اعضای خانواده‌تون رو خاک کنید. با هم میدیدینش. مطمئنم جنازه ها رو کیسه میکرد و مینداخت تو رودخونه. به پنسی کل پول داده بود و اونا هم بخشی از خوابگاه به نامش کرده بودن. توی اولین بازی فوتبال سال با یکی از این کادیلاکای تایتانیک اومد مدرسه و ما هم همگی به خاطرش پاشدیم قطری دسته کندیم. فردا صبحش توی کلیسا برام 10 ساعت سخنرانی کرد. اولش پنجاه دو جا که جلف گفت که مثلا بگه چقدر دادمه باحالیه. خیلی براش مهم بود تظاهر کنه شبیه ماست بعدن گفت هیچ وقت از کاری که میکرده پشیمون نشد و بازم اگه مشکلی براش پیش بیاد زانو میزنه و به دعا می افته. به ما هم می گفت همیشه هر هستیم دعا کنیم با خدا راز و نیاز کنیم و یه حرفا گفت بعد خیال کنیم مسیح دوستمونه اون همیشه با مسیح صحبت میکرد تا تو موقعی رانندگی خندم گرفته بود این بابای جلی عوضی جلی چشمم داره میزنه دنده که از مسیح میخواد براش چند تا جسد دیگه بفرسته بهترین این هم وسط سخن رانیش گفت گفت چقدر آدم بات کرده یه چقدر آدم توویترینی و این حرفا یهو ادگار مارسولا که ردیف جولی من نشسته بود بادیویل داد تو همچین جایی کار بیادبی بود ولی خب برای تفنن بدک نبود. بند خدا مارسالا، سخف و لرزون. هیش که جیکش در نیمد و آسمبرگر طفلک هم به روی مبارکش نیورد. ولی آقای ترمر که اون بالا کنار منبر آسنبرگر نشسته بود شنید و رنگش اینه گهت شد. پسر همچین اخمش رفت و هم که نگو البته اونجا چیزی نگو ولی فردا شب هممون توی آمفی‌تئاتر ساختمون آموزش جمع کرده کلی زیر زد گفت پسری که چنین صدای ناشایستی از خودش در کرده اصلا لیاقت تحصیل تو مدرسه پنسی رو نداره سعی کردیم مارسالا رو وادار کنیم یکی دیگه هم درست موقع حرفی ترمر در کنه ولی حوصله نداشت خب اینم از داستان من توی خوابگاه بسنبرگر بعد از خلاصی از شهر آقای اسپنسر دوباره خوابگاه رفتن حال داد. چرا؟ چون همه رفته بودم بازی و برای تنوع هم که شده این بر اتاق گرم بود. اتاق با عالی بود. کت و کراواتمو و یقه و باز کردم و بعد کلاهی که صبح از نیویورک خریده بودم گذاشتم رو سرم. یکی از این کلاه های شکاری قرمز رنگ بود. از اون مدلایی که رو خیلی درازی داشت. از مترو بیرون اومده بودم و تازه از فهمیده بودم وسیله شمشیربازی رو گم کردم که پشت شیشه ی مغازه ی ورزشی فروشی دیدمش همش یه دلار بود نقابه کشتم تو پشت سرم قبول دارم خیلی زای است ولی خوشم میاد و آشحال میکنم بعد کتابی که قبلش داشتم میخوندم دستم گرفتم و نشستم رو سندلیم هر اتاق دوتا صندلی داشت یکی مال من بود و یکی مال هم اتاقیم وارد استاد لیتر. دستای سندلی خیلی دربوده خوب بودن. چون همه روشون میشدن. ولی در نهایت سندلیای راحتی بودن. کتاب دستمو اشتباهی از کتاب خونه گرفته بودن. اونا کتابو اشتباهی بهم داده بودن. و منم تا برنگشته بودم. اتاق متوجه نشده بودم. کتاب بیرون از آفریقای ایزاک دینسنو بهم داده بودن. فکر میکردم یفتزا باشه ولی اونقدران بدک نبود یعنی یه جورایی کتاب خیلی خوبی هم بود آدم بی هم ولی کتاب زیاد میخونم و جز برادرم که محبوب ترین نویسندمه رینگ لارندرم نویسنده محبوبمه برادرم برای تولدم درست قبل از اینکه برم پنسی یکی از کتاباشو به هدیه داد کتاب چند تایی نمیشنامه با حال خول داشت و داستان کتایی درباره پلیس یه پولیس دیگه که آشق دختر زیبایی میشه که همیشه بیشتر از سرعت مجاز میرونه داستان از خند روده بارم کرد هیچی بهتر از کتابی نیست که هر از گاهی هادم به خنده بندازه ادبیات کلاسیک زیاد میخونم مثلا کتابه تو مایه های بازگشت قوم تو ما ساردی خیلی هم حال میکنم. کتابای جنگی و مهمایی هم میخونم ولی خیلی بهم نمیچسبن با کتابایم بیشتر حال میکنم که وقتی خوندنش تموم میشه آریزو کنی نویسندش رفیق فابریکت باشه و هر وقت دلت خواست بهش زنگ بزنی البته همچین چیز خیلی شدنی نیست مثلا زیاد حال نمیکنم به ایزاک دینسن زنگ بزنم به رنگ لارندرم همینطور البته دیوی میگو فوت شده بیچاره کتاب زخمای انسانی سامرست موامو ببین تا به سونه سال پیش خوندمش کتاب خیلی خوبیه ولی دلم نمیخواد به سامرست موامم زنگ بزنم نمیدونم چرا ولی آدمی نیست که دلم بخواد بهش زنگ بزنم ترجیح میدم به آقای توماس هاردی زنگ بزنم از شخصیت یوسیشتوایی که ساخت خیلی خوشم میاد <تصفح> بگذریم کلاه نومو سرم گذاشتم و شروع به خوندن کتاب کردم قبلا خونده بودمش ولی دوست داشتم بعضی جاشو دوباره بخونم سه صفحه بیشتر جلو نرفته بودم که یه صدایی شنیدم صدایی که انگار از توی همون می بیرون روبرت اکلی بود که اتاقش اتاق بقلی ما بود توی بخش ما بین هر دوتا اتاقی همون بود و تقریبا روزی صد بار مزاهمت میشد. فنو کسی بود که توی کل خوابگاه البته بجز من ننفته بود بازی رو ببینه. البته این بابا هیچ جا نمیره. آدم عجیب غریبی بود. سال بالایی بود و چهار سال تمام توی پنسی گس کرده بود. ولی هیچکس جز اکلی صداش نمیزد. حتی از هم اتاقیش هربگال هم نشنیدم یه بار به طور دوستانه صداش کنه. مثلا باب یا اک یا هر چیز دیگه ای. شعرت می‌بندم اگه ازدواجم می‌کرد زنش بهش می‌گفت فکلی. ده دکل کل بود کله بود. 1.90 داشت و, و شونه‌هاش هم حسابی پتو پهن بودن. بدبختی دندونای سالمی هم نداشت. تمام مدتی که اتاق بغلی ما بود، یه بار شد ببینم مصفک می‌زنه. دندونش به جوش زرد و خراب بودن. کافی بود توی ناهارخوری کنار دستت بشینه و دهنشو پر از پوره سیب زمینی و نخود و کوفتو زهرمر کنه تو دیگه نتونی لقمه غذا بخوری. تازه اینکه هیچی صورتش هم جوش جوشی بود خیلی روی پیشونی و چونشون جوش دارن ولی این یکی تمام صورتش جوش جوشی بود تازه اینا هم به کنار طرف شخصیت مزخرفی هم داشت آدم بدجنسی بود راستش زیاد ازش خوش هم نمیامد حس میکردم ایستاده لبه همام درست پشت سندلی داره نگاه میکنه ببینه استرادلیتر هست یا نه از اون متنفر بود تا وقتی هم اون آقا باشه پا نمیذاره تو اتاق یعنی یه یه جورایی از همه متنفره همونش که تموم شد اومد تو اتاق رو سلام کرد میگفت همیشه یا زیادی حسرش رفته یا زیادی خسته است دوست نداش خدایی نکرده به این فکر کنی که مثلا اومده پیشت بشینه دوست داشت خیال کنی اشتباهی اومده یا راگم کرد و این حرفا بدون این که از روی کتاب بلند کنم جواب سلام جوری اگه سرتو از روی کتاب بلند کنی دیگه کارت تمومه. البته همه جوره کارت تمومه ولی اگه سر بلند کنی زودتر کلکت کنده میشه. چوری کرد؟ دو رو اتاق دو رو افتادن. اصلا عادتش همینه. این دیوونه ها را میفته وسیله شخصی تو روی میزش تحریر رو کشا رو همه چی رو وارسی میکنه. همیشه خدا کارش همینه. بسر با اعصابت بازی میکنه. اوف شمشیر بازی چطور بود؟ خواست بیخیال کتاب شم و حال هم ببرم و اگرنا خودش هممشی رو براش مهم نبود پرسید بردین یا ریدین بازم بدون اینکه سربلند کنم گفتم هیشکی نبرد یکی دیگه از عادتش اینه که کرم داره هر چیزی رو دوبار بشنبه چی؟ هیشکی نبرد زیر چشمی نگاهی انداختم ببینم بالا سر قفسم داره داره چیکار میکنه داشت به عکس سالی هیز نگاه میکرد نیویورک که بودم با سالی بیرون میرفتم این پونصد و باری بود که عکس لعنتیو برداشته تماشا میکنه تازه همیشه هم وقتی کارش با عکس تمام میشه سر جاش نمیذاره داشت تابلو کرم میریخت چطور ایشگی نبرد من وسایل تو مترو جا گذاشتم البته هنوزم سر بلند نکرده بودم از دست تو میخوای بگی گمشون کردی؟ مترو رو عوضی سوار شدیم حواسم به نقشه روی دیوار بود اومد جلی نور وایستد وای از وقتی پا تو گذاشتی اینجا یه جمله رو بیست بار خوندم کی جای اکلی گاو بود دوزارش میافتاد ولی این بابا از اون نفهمه بود فکر میکنی پولش رو ازت بگیرن؟ چه میدونم به یه برم؟ اکلی کوچولو چرا نمی‌شینی؟ جلو نور خوندنم رو گرفتی. از اینکه یکی بهش بگه اکلی کوچولو متنفر بود همیشه خودم به من میگفت بچه اونم به خاطر دو سال اختلاف سنی ناقابل وقتی بهش میگفتم اکلی کوچولو خول میشد همونجا جله نور وایستاد اصلا عادم نبود نبود که وقتی ازش میخواید جله نور کنار بره این کارو بکنه آخرش کنار میره ولی خب لفتش میده که حرستو در بیاره داری چی میخونی تو؟ کتاب پسر ای گاف کتابم و دستش بالاداد و اسمشو خوند پرسید کتاب خوبیه این جملهش که خیلی خوبه وقتی حوصله‌ام بکشد میتوانم بد جنس خوبی باشم یعنی اکلی اصلا حالیش نبود دوباره توی اتاق راه رفت و سرشو کرد توی وسایل منو و لیتر آخر سر بی خیال کتاب شدم تا وقتی آدمی مثل اکلی دم دستت باشه نمیتونی این آدم کتاب بخونی محاله از روی سندلیم بلند شدم و همینجوری اکلیو که دیگه داشت زیادی پسرخاله میشد تماشا کردم نیویورک رفتن خستم کرده بود به خمیزه کشیدن افتادم بعدش حوض کردم دستش بندزم گاهی زیادی آدم رو دست میدازم تو واسه خودم سر نره برای دست انداختن این یارو اکلی گاو نقاب کلمو برگردوندم سر جاشو کشیدمش رو سرعتم اینطوری دیگه ریخت نحسشو نمیدیدم با صده گرفتهی گفتم دارم کور میشم وای مامانجون همه جا سیاه شده اکلی گفت تو واقعا دیوونه ای مامان جون دست تو من چرا دست دستتو بهم نمیدی ترا خدا یکم بزرگ شو. عین این کورا دستم رو گرفتم جلوم و جلی تکونش میدادم که انگار دارم دوملی چیزی میگردم مدام میگفتم مامان جون چرا دستو بهم نمیدی؟ آره خب فقط داشتم مسخره بازی در میآوردم. همین کرم ریختن گاهی سر حالم میکنه. مخصوصا اینکه میدونستم اکلی حالش از این کارا به هم میخوره. اکلی همیشه با اسمشو جنبه سادیستیم رو بشه. باهاش که بودم خیلی پیش میومد سادیستی بشم ولی خب آخر سر بیخیال شدم. دوباره به صندلی تکیه دادم و آروم گرفتم. گفت اینا مال کیه؟ زانوبنده همتاقی ما میگفت پسری عوضی هرچی دمه دستش میومد برمیداشت گفتم مال استردلیتر بعدش رفت سر وقت تختشو رو خوب گشت کارش که تموم شد اومد نشست رو دسته سندلی هیچ وقت این آدم روی خود صندلی نمیشینه این کلا از کدوم گوری خریدی؟ نیویورک چند؟ یه دلار. کلا سرت رفته با ته چوب کبریت شروع کرد به پاک کردن ناخوناش همیشه ناخوناشو پاک میکرد خدا خیلی زایه بود که دندوناش همیشه کر و کسی فودن و حالتو به هم میزدن ولی برای ما ناخون پاک میکرد آقا تو شهرمون همچین کلایی و موقع شکاری گوزم میزونم کلا شکاری گوز نه کلامو برداشتم و نگاش کردم آره شبیه شه چشم هستم و جست تیراندازی رو گرفتم کلاه شلیک به آدم از توی این کلاه آدم ها رو هدف میگیرم مامان بابات میدونن اخراج شدی؟ نه استرد لیتر کدوم گوریه؟ رفته بازی رو ببینه بایی که قرار داره خمیازه یه اسبابی واری کشیدم اتاق زیادی گرم بود و منم حسابی خوابم گرفته بود تو پنیسیا از سرمو یخ میزنی یا از, می از گرما آب میشی استرد لیتر بزرگ بار آهان آه راستیون قیچوی یه دقه میدی دم دستته نه وسایلمو جمع کردم تو کماده یه دقه برو واسه بیارش یکی از ناخونام شکسته میخوام قیچیش کنم فسری گاو نمیفهمی جمع جور کردم بالاخره رفتم براش آوردم ولی بدجور پدرم در اومد. همون لحظه که در کمدو باز کردم راکت تنیس استرادلیتر که توی محافظ چوبیش بود درست خورد فرق سرم خیلی دردم گرفت اتفاقی که پاره شده بود از خنده همچی بلند میخندید که اتاق میلرزید تمام مدت که داشتم چمیدون همو پای می آوردم تا قیچو از روش در بیارم خندش قطع نمیشد یک همین چیزهای مسخره مایه خنده آخه بود اینکه چیزی بخوره فرق سر آدم آره همین شد سوژه خندهاش؟ بهش گفتم میدونستی خیلی با قیچی قیچیو بهش دادم میتونم اگه خواستی مدیر برنامت بشم و ببرمت رادیو برنامه خنده بازار اجرا کنی دوباره رو سندلیم نشستم اکلیم هم مشغول گرفتن ناخن بزرگ و بعد شد. چرا رومیز نمیشینی؟ رومیز بگیرشون دوست ندارم شباکه پا پابرنه را میرم تای تا ناخنات بره تایپام. نکبت ولکن نبود همینطوری روی زمین نشسته بود و برای خودش نخوم میگرفت رفتورش کفریت میکرد حالا با کی قرار داشت؟ با اینکه از استردلیتر متنفر بود ولی همیشه آمار قرارش رو داشت چه میدونم چطور؟ همینطوری میدونی خیلی ازش بدم میاد؟ آدم گاهیه حالا ما بد میکنه حالا اون عاشق توه؟ گمون میکنه واسه خودت یا پا شازده هر وقت بخوام سر به سر کسی بذارم بهش میگم شازده. اینطوری اصلم سر نمیره. همیشه خودش رو دسته بالا میگیره. حالمو به هم میزنه. فکر میکنه آهای خیال نداری این تو رو میز بگیری که پنجاه بار که با آدم یه چیزی رو نمیگن. خیلی واسه خودش کلاس میذاره زپرتی فکر فکری کیه؟ یارو گمون نکنم قدیه کاخت اون کلی پوکش باشه. البته خودش فکر میکنه عقل کله خیال میکنه. اکلی تو رو خدا میشه اون ناخونای لعنتی تو رو میز بگیری زبونم مو در بالاخره واغو به خودش زحمت داد و کارشو منتقل کرد پشت میز. فقط باید سرش داد بزنی تا حرفتو بفهمه و گوش بده. یکم تماشاش کردم. گفتم به خاطر این ازش بعدت میاد که گاهی به مسخ زدنت گیر میده. اکلی نمیخوام بهت بی احترامی کنم. نمیگم کارش درسته یا نه ولی میدونم قصدش توهین نیست فقط منظورش اینه که اگه دندوناتو مصفک بزنی هم دندونات تمیز میشن هم حس بهتری داری انقدر چرت نگو من خوبش هم میزنم نه نمیزنی دیدم که نمیزنی اینو واقعا با بدجنسی نگفتم یعنی یه جوری دلم به حالش میسخت خب در کل خوب نیست یکی آمار مسواک زدن تو داشته باشه استردلیتر پسر خوبیه مسئله اینه که تو خوب نمیشنسیش هنوزم میگم آدم گندیه یه آدم از خود رازی عوضی آره از خود ولی یه جوره ایم بزرگواره ببین فرض کن استردلیتر کرواتی زده و اون کروات دل تو رو برده و این حرفا البته این فقط یه مثاله میدونی اون چیکار کار میکنه مطمئنم میدهتش بهت کروات رو میگم حتما این کارو میکنه مثلا برات رو تخت. خیلی همین کار رو نمیکنن زحمت میکشه خب منم اگه اندازی اون ماهیدار بودم همین کارو میکردم سر تکون دادم که نه اگه تو بودی این کارو نمیکردی نه اکلیکوچولو تو همچین کاری نمیکردی اگه پولشو داشتی میشدی یکی از بزرگترین بار آخرت باشه که باید میگه اکلیکوچولو عوضی سن بابا تو دارم خیال کردی پسر با هم میدیدیش گاهی میگیره. امکان نداره لحظه‌ای بگذر و نذری یادت بره که شونزده ساله یا اون 18 ساله عمرانه که بذارم طرف فک و فامیل من افتاد خیلی خوب فقط دیگه بهم نگو یهو یه درواز باز شد و استراتیلیتر اومد تو موها سر شاطیش بودن بعدجوری همو تیش گرفته بود اون همیشه طوری رفتار میکنه انگار جای شاطیش گرفته اومد طرفمو به شوخی دو تا خوابون تو صورتم این کارش کفرین میکنه ببین امشب قراره جایی بری <تصفيق> نمیدونم شاد رفتم بیرون چه خبره داره برف میاد سر برفی بود آره ببین اگه جایی خاصی نمیخوای بری میتونی اون کت کبریتی تو بهم بدی <تصفيق> بازیو برد هنوز اون نشده ما میخوایم بریم خب بگو ببینم کت واسم امشب میخوای یا نه رو کت فلانل خاکستری خودم نمیدونم چه کوفتی ریختم همقد بودیم ولی وزنش دو برابر من بود شونهاش خیلی پهن بودن <تصفيق> نه لازمش ندارم ولی دوست ندارم شونهاشو گشاد کنی گشادش نمیکنم کنم توندی سر کرد توی کمادم اکلی مکلی کوچولو چی میگه؟ به اکلی اشاره کرد استرد لیتر در نهایت پسر خوبیه خب تو رفاقت یه جوری آدم جهلی بود ولی حداقلش همیشه به اکلی سلام میکرد اکری جواب سلامشو نداد فقط یه صدایی از خودش در آورد هرچند صداشون قدران بلند نبود. بعد رو کرد بهم به که گمونم باید برم بعدا میبینمت. باشه گفتم هیچ وقت رفتنش از جم سر سوزنی کسی رو نمیکرد. نمی کرد باز کرواتشو کرد گمونم لازم جنگی صورتمو بزنم تعریشش در اومده بود صورت پر پشتی داشت قرار خوش گذشت؟ دختر تو آنکس منتظره با کیف ریش و حوله روی دستش از اتاق رفت بیرون. همیشه نیمتن لخت تو خوابگاه جلوم میداد. خیال میکرد خیلی خوش کله. راستش خوش کلان بود.